خواب به قاتل برسد یا در بیداری هم کسی او را بدون جور بکشد شهید است شهید به کسی گفتی می شود شهید به کسی گفتی می شود که بدون این که مستوجه یعنی برون قتل وادی شده باشه می کشند او را و قاتل او را کشته باید به ساس می شود. مسلمانی کشته باشد یا کافری کشته باشد به هر صورت کسی که کشته میشه شهید حساب می شود اما اگر به خاطر جرم کشته شد مثلا زنا کرده بود کشته شد یا به خاطر قتل کشته شد، یا شهید کشت شود بدون جرم کشته شد شهید است و اما این به اعتبار احکام شهید است آیا واقعا شهید یا شهید نیست این الله میداند داخل صحیح بخاری کتاب الجهاد اونجا حدیث داریم که نبی مکرخ اسلام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند که اللہ میدوند انها چرا جنگیدند چرا کشت شدند اون اللہ بہتر میدوند که آمال انها اما بیعتبار احکام دنیا شهیدی سامیشون احکام دنیا که انکه شوستن راکفن کرده و اینها لازم نیست اگر زنا کردی بود بنابر زنا کشته شد و زنا هم به شده باشد بعض شهید نیست اما اگر جو مش قاتل نیست و قاتل کسی که او را کشت و قاتل بخاطر کشتن این باید قصاص بشود باید باید شهید است. شرطی که در جا بمیرد اگر در جا نمرد سفارشکر آب خور قضا خور مداوا شد این احکام شهید در این اجرا نمی شواند.